صحیفه معرفت شرح دعای هفتم هم سحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی جلسه نهم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صل الله علی نبینا و آله تیبین الطاهرین المعسومین لا سی ما الله في العرزین انایت دارید که دعای 17 همه صحیفه سجادیه رو با هم دیگه داریم پی میگیریم. همونگونه که انسان ها می توانند اعمال و حرکات و رفتار شایسته ای داشته باشند تا حدی که فرشتگان و ملائک الهی حیرت زده شوند از نحوه اعمال انسان و این بشر با این حرکات و افعالش حتی از ملائک هم برتر رود ولی با وجود این همین انسان می تواند به شکلی عمل کند که به قول قرآن کریم اولائکه کل انعام بلهم شود یعنی رفتار ما به گونه های مختلفی می تواند بروز کند مسلما ما به عنوان یک انسان باید به فکر فرو رویم چه می شود گاهی رفتار و اعمال و کردار ما اعمالی است که فرشتگان هم فرض کنید قبطه بخورند اما گاهی رفتار ما به گونه ای شود که حتی حیوانات هم به اون شدت درندگی و حیوانیت نشون ندهند. ما نسبت به این عامل آیا می شود بی توجه باشیم؟ امام سجاد علیه السلام در دعای هیبده صحیفه نزغات شیطان، نفوذ شیطان در قلب و دل انسان، شیطانی شدن نفس و حالات نفسانی، به عنوان مصدر و منشأ اصلی که باعث می شود این گونه اعمال از انسان سربزند را معرفی می کند پس انسان یکی از عوامل رفتار ناشایست خود را نزق شیطان، وسوسه شیطان، نفوذ شیطان در درون باید بشناسد ولی این شناخت و معرفت به تنهایی کفایت نمیکنند بلکه باید بعد از آن که متوجه این مطلب شد، هم راه نفوذ شیطان به قلب را بگیرد، راهایی که باعث اسمی شود شیطان کارایی داشته باشد، آن راهها را ببندد، عواملی ایجاد کند که شیطان را از خود براند و دور کند و هم اگر در درونش راه پیدا کرده بیرون براند. فرازهایی از دعا رو با هم خوندیم و بحث کردیم اما به این فراز رسیده بودیم که امام علیه السلام خاری شیطان حلاکت شیطان را با کلمه کبته و اکبتو حلاکش بکن خارش بساز حلاکت یک شی مساویس با بی اثر بودن اون شی. بنوان مثال ارز کنم اگر شما یک ماری رو در نظر بگیرید این مار کشنده است زهر در نیش او قرار گرفته و شما نگرانید که این مار به شما نزدیک نشود و اگر شما را نیش زد چه کنید که زهر موجود در بدن را بیرون بکشید و نگذارید در بدن شما اثر سو بگذارد تمام اینها منوط به این است که این مار یک زنده باشد هلاک نشده باشید. حالا اگر کسی از راه رسید و این مار را کشت و هلاکت رسند شما از مار مرده وحشت نمی کنید و اما اگر این مار به هلاکت نرسیده بود انقدر ضعیف شده و انقدر توان این مار را از او گرفتن یعنی زبونی و خاری به تعبیری برای این مار فراهم شده میگویند نترسید از کنارش رد بشید کاری نمیتونه بکنه کلمه اکبر تو این لغت نشون میده هم هلاکت شیطان هم خاری و ذلیلی شیطان برای برخی که به مقام اخلاص رسیدن طبق آیه شریفه قرآن شیطان نسبت به اونها هیچ کاری نمیتواند بکند یعنی اگر شیطان را با کسانی که به درجه اخلاص رسند بخوایم بررسی کنیم شیطان برای اونها حکم حلاک شده را دارد هیچ کاری از او ساخته نیست پس یک ما می توانیم با دعوبه در محبت که امام علیه السلام مطرح کردند کوشایی جدیت در مرحله محبت الهی به جایی برسیم خدا رو دوست بداریم آشق خدا بشیم کالای این محبت الهی رو باز باید یه مقدار توضیح ارز کنم یک بحث لفظی تنها نیست یک واقعیت است دوست داشتن یعنی چی؟ اما به بیان امام سجاد علیه السلام محبت خدا می تواند محب خدا را انقدر خالص بگرداند که شیطان در برابر او حکم موجود حلاک شده را داشته باشد وقتی حلاک شد دیگه شیطان در او نفوذی نمی تواند بکند اما اگر این انسان دعوبه در محبتش به اون حد نرسیده باشد که به مقام اخلاص رسیده باشد ولو در سطوح پایین ترم قرار بگیره ستوه پایین ترم می تواند شیطان را به یک خاری و ذلتی برساند که اون اثری که شیطان در دیگران دارند در این فرد نتواند داشته باشد پس راهی که صحیفه سجادیه برای بی اثر کردن قدرت شیطان به ما معرفی می کند محبت خداست اما این نکته را بدانیم محبت گفتیم دلدادگی و دلبستگی است اما اگر دل من به غیر خدا داده شده است یا اصلا خدا در این دل راه ندارد یا اگر بر فرض هم بخواهم خدا رو در این دل راه بدم با بودن محبوب های دیگر خیلی رابطه محبتی با خدا برقرار نمی شود لذا محبت خدا به این نیست من هر کاری دلم میخواد انجام بدم هر مجلسی دلم میخواد برم هر نوع حرکت و تلاشی رو که میپسندم انجام بدم خواست خدا رو در نظر نگیرم اما زمنان بگم خدا رو دوست دارم من محب خدا هستم این را منطق و عقل نمیپذیرد محب یک محبوب در صورتی میتواند ادعا کند من محب به محبوبم که محبوب را به بقیه ترجیح دهد مادر سمبل محبت به فرزند است وقتی فرزندی در استخر رافتاد خطر غرق شدن داشت مادر با وجودی که جان خود را دوست دارد ولی این دوستی و رابطه محبت با فرزند اونقدر قوی است فراموش میکند که شنا نیست یعنی خود را نمی بیند خود رو به آب میندازه به خاطر محبوب زمانی ما محب خداییم که خود را نبینیم تا فضل و علم بینی بیمعرفت نشینی یک نکته اد بگویم خود را نبین که رستی خود را نبین یعنی چی؟ یعنی خودخواه ما باش لازمه خودخواه بودن چیه؟ خداخواه اونیست که اونی که خدا خواسته میخواد ولی خودخواه، اون اونیست اونی که هوای نفسش میخواهد بخواهد زمانی محبوب خدا محب خداییم و خدا محبوب ماست ببینیم خدا از ما چه میخواهد وقتی خداوند میخواهد مثلا شما نماز بخانید روز آشوراست با تمام اون شرایط خاص کربلا وقتی ابو سمام سائدی به امام حسین عرض میکنه آقا وقت نماز است امام خوشحال میشوند و دعا می کنند و میفرمایند خداوند تو را از نمازگزاران به حساب بیاورد که میخواهیم نماز بخوانیم یعنی کاری که او میخواد میخواهیم انجام بدیم در جنگ سفین در اون بهبوهه قضایی جنگ که امیرالمؤمنین با یک عده مثل معاویه و اممالش که مردم رو فریفتن، راه حق رو آلوده کردن، دین رو میخواهند مطابق امیال خودشون تفسیر و توجیه کنند چه بلایی که به سر مسلمونها نیاوردند یاران ارزنده امیر در این جنگ شهید شدند و دارن میجنگن و ادامه میدهن شخصی جلو امیرالمؤمنین رو گرفته، یا علی راجب خداشناسی و عبودیت حضرت حق سوالی دارم، امیرالمؤمنین دست از جنگ میکشند، گوشه ای می ایستن و مشغول تعلیم و جواب دادن و توضیح مطلب میشوند. شخصی اعتراض میکند: در چنین شرایطی مولا در جواب میفرمایند: ما همه کارمون برای خداست. او سوالش برای خداست. پس جنگ برای خدا، صلح برای خدا، قیام برای خدا. قعود برای خدا، خوردن برای خدا، نخوردن برای خدا، رفتن برای خدا، نرفتنم برای خدا این میشه محب الهی وگرنه تو برخی ادیان و مذاهب و نهله ها هی سخن از محبت خدا میآید کجا خدا گفته از شما میتوانید دروغ بگویید؟ پس چطور اگر شما محب به خدایی دروغ رو میپسندید؟ کجا خداوند میگوید شما میتوانید کلک بزنید و به مردم حق بازید بکنید و حقوق مردم رو زیر پا بگذارید یا بیگناهان رو بلا به سرشون بیارید رعایت حقوق دیگران رو نکنید اما در این حال دم از محبت بزنید محب به خدا است. که در دلش خدا را یافته باشد و اگر خدا در دل راه یافته جایی برای غیر خدا پیدا نمی شود پاسبان حرم دل شدهم هم. شب همه شب تا در این پرده بجز اندیشه او نگذارم معروف است یکی از بزرگان از اوتاد روزگار شخصی از او درخواست موعظه کرد مرا موعظه کن اون مرد خدا از او پرسید شغلت چیست گفت نجارم در و پنجره میتراشم گفت تا کنون دری برای خانه دلت ساخته ای اون مرد چنان منقلب شد که بیهوش شد و افتاد گفت دری برای خانه دلت ساخته ای در خانه دل رو باز کردم هر چه که بناست در این عالم نپسندم وارد خانه دل شده است خانه دلی که اغیار در او راه یافته است جای حضرت حق نیست. خانه دل نیست جای صحبت اغیار. دیو چو بیرون رود فرشته درآید خانه دل جارو کن و نگه مهمان طلب. لذا به فرموده امام سجاد علیه السلام یکی از اموری که در این عالم ما را یاری میدهد که بر شیطان غلبه کنیم. شیطان رو به حالت هلاکت و خاری در بیاوریم، تلاش در محبت خداست باید عزیزان بکوشیم آشق خدا شویم، محبت خدا رو در دلمون زیاد کنیم لذا با کسانی که آشق خدایند بنشینیم کتابهایی که عشق خدا رو در دل ما زیاد میکند بخوانیم، محافل و مجالسی که یاد خدا رو در دل ما زنده میکند بیشتر شرکت بجوییم عواملی که ما رو از یاد خدا غافل می کنن، از اونها جدا شویم این محبت کار رو به جایی میرساند که امام علیه السلام در ادامه می فرماین و جعل بیننا و بینهو سترن لا یهتکهو خدایا قرار بده بیننا بین ما و بینهو بین اون شیطان که میخواد ما رو گول بزنه و از راه تو دور کنه سترن یه پرده ای، یه مانعی یه هجابی لا یحچکو که این ستر را این پرده را او نتواند حتق کند بدرد و از میان ببرد ببینید اگر بنده اینجا باستاده باشم یک حیوان درنده خطرناکی اون قسمت بین ما هیچ هجاب و حائل و مانعی وجود نداشته باشه خب طبیعی است که من باید نگران باشم چون اون حیوان در است و خطرناک ممکنه هر لحظه به من حمله ور بشه اما فرض دوم بین من و اون حیوان یه پرده کشیدن یه حائل و سطری رو قرار دادن ساتری وجود دارد ولی این ساتر و این پرده زخیم نیست مثل یه پارچه است الان حیوانی که پشت این پارچه قرار گرفته من هم این طرف استاده هم. متوجه شده که من اینجام هر آن ممکنه یه حمله کنه این پارچه رو بندازه کنار و بیاد به طرف من من اگر عاقل باشم در چونین شرایط نگرانی دارم یا نه میگم بین من و او حائل محکمی قرار نگرفته او هر آن بخواد به من حمله کنه میتوانه پس لازمه که متوجه باشم از معرض خطر او بگریزم فرض فرض سوم بین من و او حائلی است این حائل محکم مستحکم و نمیتونه او این حائل رو بشکنه به من برسه لذا من با خیال راحت مشغول مطالعه هستم مشغول کارم هستم میگن پشت این الان اون حیوان خطرناکه که میگم باشه شما تو باغ وحشا دیدید در رندهترین حیوان بسیار خطرناک وحشی ولی وقتی توی قفصیست که این قفص مثلا جدارهای های آهنی محکمی داره شما تا یک متریش هم نزدیک میشوید، خیلی راحت واسطا میکنید، دارید مطالعه می نگاه میکنید، تماشا چرا نگران نیستید برای اینکه بین شما و او یک ها و سطری قرار گرفته که این سطر دریده نمی شود. امام سجاد علیه السلام بعد از بیان و اکبت به دعو بنا فی محبتک دو تا جمله دارند. یه جمله اینه وجعل بیننا و بینهو سترن لایحتکوهو خدایا بین من و او ستری پوششی ای هجابی حائلی مانعی قرار بده که او نتواند این را بدرد و رد من مسمتن یف و هو. ردم بندو میگن صدو میگن وقتی جلو چیزی صد میزنن مثلا رودخونه آبیستاری میاد شما جلوه این رو صد میبندید یا سیلگیر درست میکنید سیل وقتی با اون سرعت میاد چه خرابی هایی که به بار نیاره حالا یه بند میزنن صد. سیلگیر درست میکنن این سیلگیر و این بند و صد. اگر مستحکم نباشد شرایط لازم و در مقابل این فشار آب و سیلی که داره میاد نداشته باشه میشکنه و با اون فشار خطر خرابی بیشتر میشه اما امام علیه السلام میفرماید خدایا از خدا میخواهد به خدا عرضه میدارد خدایا بین من و شیطان ردمی صدی قرار بده مسمتن با ساد سمت با ساد میدونید سکوت رو میگن مسمت اون میان پر رخن ناپذیر ردمن مسمتن صدی که تو خالی نباشه یعنی یه وقت ممکنه شما یک بندی زده باشید خیلی هم قطور باشه ولی تو خالیه چیزی توش نیست پر نیست اون زخامت و استقامت رو نداره ضربه خرد میشکنه رد میشه ولی اگر این صد پر بود و قوی بود فشار آب نمیشکنه نظامی که خدایا از تو میخواهم بین من و او رد من یه بند و سدی که این بند خود رد بستن رخنه معنی میده یه رخنه رو میخواهید ببندیم اینو رد میگن یعنی جلو این نفوذ را کنایه از نفوذ شیطان تأثیرگذاری شیطان نزغات شیطان رو کنید به یک سیل خانمانسوز که با سرعت داره میاد در مقابل این سیل خانمانسوز میخواییم یه, یه بند بگذاریم که این بند تو خالی باشه خب معلومه که میشکنه سیل رد میشه ولی اگر این بند تو پر مسمت بود یعنی میان پر رخن ناپذیر لایفتوگهو فتق شکافتن رو میگن فَتَقَ ف نقطه قاف فَتَقَ شکافت فَتَق شکافتن پاره کردن لا یَفْتَقُهُ خدایا از تو میخوام بین من و او رد من مسمتن یک صد توپر رخنه ناپذیر محکمی باشد لا یفتقو که شیطان نتونه این صد رو بشکنه و پاره کنه خب حالا این دوتا فراز از صحیفه و این دو عبارت رو دقت بیشتری بکنیم شیطان مثل سیل خانمانسوز میتونه به طرف ما بیاد شیطان میتونه مثل یک حیوان دررندهی به ما حجوم پیدا کنه اون سحالتی هم که عرض کردم یک من بین خودم و شیطان هیچ حائلی قرار ندادم خود وقتی حمله میکنه از بینم میبره شما اگر در معرض سیل قرار داشته باشید به فکر سیل بند نیستید اگر در معرض یک حیوان خطرناک قرار بگیرید یک نرده ای نمی کشید فرض کنید خونه من در دامنه جنگلیه به من خبر دادن یه سری حیوانات خطرناک کشنده تو این جنگله هر آن ممکنه تو خونه شما حجوم بیاره شما یه نرده نمی دور حیاطتون پشت پنجرهتون نکنه حجوم کنه و شما رو در معرض خطر بگذاره یک ابزاری اسلحهی تهیه نمی کنید اگر شبانه خونه خونتون شد بتونید از خودتون دفاع کنید پس یک باید به فکر سطر, سطر یا ردم به فرمایش امام علیه السلام شد باید درست کرد. اما بدانیم مانه موقتی مبقتی کوتا که هر آن ممکنه پاره بشه بشکنه از بین بره اینا کاری نمیتونن بکنن یعنی اگر ما تحت تاثیر برخی از عوامل بخوایم حالا یه مقداری جلو شیطان مانع ایجاد کنیم مثل اینه که مثلا یه بند کوچکی زدم حالا یه سیل مختصری اومد جلوشو میگیره ولی سیل یه کمی انباشته تر و انبوکتر شد صد و میشکنه باید این صد مسنت باشه به فرموده ای حضرت این سطر باید لا کهو نشه او رو بشکنن و پاره کنن اون چیه عبارت قبلی فرمود محبت خدا یعنی اگر ما واقعا محبت خدا داشته باشیم یک صد محکمی بین ما و شیطان درست میشه که شیطان محبوب خدا را نمی تواند تحت تأثیر قرار بده پس تمام تلاشمون رو به کار ببریم خب به خدا رو در دلمون زیاد کنیم توضیحی میدم یه مطلبی رو که در یک دو جلسه قبل با اشاره رد شدم ولی شاید این توضیحش در اینجا یه مقداری مطلب رو بیشتر برای ما روشن بکنه انایت به این عرض بنده داشته باشید. عرض کردم ما دو تا سرمایه بسیار بزرگ وجودی داریم که هر دو سرمایه هم در قرآن ذکر شده هم در روایات ذکر شده خیلی هم روش انگشت گذاشتن یکی عقله یکی از سرمایه های بزرگ ما انسانی عقله تا اون حدی که در روایات ما گفته شده هدیهی بالا تر از عقل خداوند به انسان نداده یک جنبه دیگر دل هست که اون سرمایه عظیم الهیه که در مورد دل حتی در روایات آمده عرش و رحمان، الغلب و عرش و عرش الهیه. این عقل و دل دوتایی، اگر دست به دست هم دادن در یک راستا رفتن انسان خوشبخت و رستگار و سعادتمنده اگر هر دو تعطیل شدند، انسان بیچاره و بدبخته و اگر بین عقل و دل درگیری و تزاد ایجاد شد بازم انسان بدبخت و بیچاره است مثالی میزند یکی از صاحب نظران مثال خوبیه میگه شما یک کالسکه یک گاری رو در نظر بگیرید اگر این گاری رو مثلا بنده اینجا قرار دادم اسبی که میخواید این گاری رو به کشه ببره یه دونه اسبه. خب به اندازه قدرت یک اسب گاری رو حرکت میده حالا دو تا اسب کنم هم خوبه هم بد در چه صورتی خوبه دو تایی هماهنگ باشند با همدیگه دیگه به حرکت کنند، اسب رو جلو ببرن اما اگر دو تا نه سه تا نه چهار تا اسب کردم با اینکه چهار برابر می شود. نیرو بیشتره و علالقائده باد راحت تر گاری رو به حرکت بده اما این چهار تا اسب در چهار جهت مخالف گاری ببندم یکی به این سمت یکی به این سمت یکی راست یکی چپ گرچه این اسب ها توان دارند و گاری رو میکشند ولی چون با هم هماهنگ نیستن، هر کدام به یک سمت میبره یا گاری شکسته می شود خورد می میگردد یا اینکه این, این نیروها همدیگر رو خنسا می کنن، در جا میزند عقل و دل دو قدرت قوی که ما ها رو باید به سوی پروردگار حرکت بدن العقل ما بده به و واکتصب به الجنان حدیث در اصول کافی عقل است که انسان رو وادار میکند تا عبد خدا شود عقل اون چیزی است که باعث میشود کسب بهشت کند انسان رو بهشتی بسازد دل عرش رحمانه دل کانون اشق الهیه دل جایی است که نور الهی در او باید بدرخشد و در این دل تجلی عظمت پروردگار جلوهگر شود و هر کدوم انسان را به سوی جنان و قرب الهی سوق بدن ولی اگر این دو با هم هماهنگ نبودند دل به یک سمت ببرد عقل به یک سمت ببرد یا خدایی نکرده هر دو رو در جهت باطل سوق بدیم معلومه که این انسان هم تفکرش میشه غلط هم دلدادگیش میشه غلط. پس برای اینکه دلدادگی و تفکر ما درست شود باید چه کنیم یک؟ یه مقدار فکر کنیم. حقیقتا اون چرا که ما دوست میداریم و به او عشق میبرزیم ارزش دوست داشتن دارد یا نه و اگر دارد تا چه هد؟ پیغمبر خدا به شخصی رسید. خواست به دیگران تعلیم بده. گفت مرا دوست داری؟ اون بنده خدا گفت بله یا رسول الله شما رو خیلی دوست دارم. حضرت فرمودن چقدر از پدر مادرت بیشتر؟ گفت بله یا رسول الله. از خودت بیشتر؟ بله یا رسول الله. از خدا بیشتر؟ گفت نه یا رسول الله. من شما رو برای خدا دوست دارم. چون منو به خدا آشنا کردی. پیغمبر خدا به بقیه فرمودند دوستی رو از این یاد بگیرید دین رو از این یاد بگیرید یعنی حریم رعایت میشه منی که پیغمبر رو از جان خودم بیشتر دوست دارم پیغمبر رو از پدر مادرم بیشتر دوست دارم ولی اگر به خدا بیشتر دوست داری حریم حفظ می شود نه نه عوذ بالله پیغمبر خدا رو به ما شناسنده به همین دلیل در سوره مائده آیه 35 خداوند به ما می آموزد یا ای الذین آمنوا مؤمن شدید یعنی یه درجه اومدید بالا اتق الله بالاتر تقوا پیدا کنید اما مؤمنی که ایمان آورده است و تقوا دارد در این مقام عالی قرار میگیره این را بداند که اون چه که او را به سوی خدا میرسونت احتیاج داره باد اتخاذ کنه لذا ادامش میفرماید و بتقوا الی هل وسیله اون وسیله ای که الی به سوی خدا شما را میکشاند از اون وسیله استفاده کنید لذا فرمودند پیغمبر و اهل بیت وسیله الهی‌اند برای رفتن به سوی خدا اگر ما حتی به ائمه عشق ورزیم به پیغمبر علاقه و محبت نشون میدیم تماما در راستای قرب حضرت حق است که ما را به آن سمت حرکت می‌دهد و پیش می‌برد پس اگر محبت و دوستی مطرح است یعنی عقل فکر کند چرا دوست بدارد اصولا هر چرا را ما دوست می‌داریم مگر به این جهت نیست که ارزشی دارد دوست می‌داریم ما ضد ارزش رو که دوست نمی‌داریم حتی کسانی که ضد ارزش را دوست می‌دارند این اشتباه را کردند به خیال اینکه ارزشی دارد دوست می‌دارند خب حالا بر این اساس فکر کنیم بالاتر ارزندهتر، برتر از ذات اقدس الهی چه می‌تواند باشد وقتی منشأوس پس بالاترین محبت هم باید برای او باشه لذا خداوند در سوره بغره آیه 165 که قبلن براتون خوندم سرزنش می کند از بعضی و منن ناس من یک تخز من, من دونه لاح اندادن یو هم که هبه لاح اما ادامش فرمود بللزین آمنو اشد دو هبن لله. پس این رو توجه کنیم اگر حب الهی پیدا کردیم با این حب ستری بین ما و شیطان ایجاد می شود که شیطان نمی, نمی تونه پاره کنه ردمی مسمت بین ما و حضرت هف ایجاد می شود که شیطان نمیتواند این را بشکافت و سلام علیکم